فصل 14 بیماری دست مامان در خیابانی شلوغ و پر رفت آمد بودم مامان دستم را می کشد چیزی مرا ناراحت و مستاصل کرده بغز کردم مامان عصبانی است تب داره چته شیرین؟ سردته؟ صدای علی بود زیر پتو خیس عرق بودم علی دستش را بر پیشانیم گذاشت خونه همسایه چیزی خوردی دلم پیچ میزد بلند شدم باید به دستشویی میرفتم نکنه سیانور مسموم شده باشی اشاره علی به اتفاقی بود که به تازگی برای رفیقی رخ داده بود سیانور از درز کپسول به دهانش نشت کرده و رفیق را مسموم کرده بود او شانس آورده بود که مقدار بسیار کمی سیانور نشت کرده بود یک هفته ای طول کشید تا دوباره سر پا شود. از حرف علی دلم به شور افتاد اولین بار پوران کپسول سیانور را به من داد آن را در دهان گذاشتم و ما هر لحظه نگران شکست شدنش بودم پوران گفته بود هر وقت رأی واسه فرار نبود اینو گاز بزن می توانستم تجسم کنم که سیانور را در کیف داشته باشم و در موقع نیاز در دهانم بگذارم اما اینکه آن قرص مرگ را همیشه در دهان داشته باشم برایم قابل تصور نبود. میترسیدم ترسیدم که هر لحظه در برخورد با دندانهایم بشکند. پوران همین را از چهرم خواند و گفت نگران نباش زود عادت میکنی دور نیست وقتی که باش غذا هم بخوری. آن روز باور نکردم اما درست گفته بود. حالا حتی فراموش میکردم که آن را زیر زبان دارم. از کپسولی که در دهان داشتم مطمئن بودم آن را خودم در تهران درست کرده بودم مثل همیشه شیشه آمپول را از داروخانه خریدم تکه بلند آن را با چاقو بریدم محتویاتش را خالی و سیانور را توی آن ریختم سرش را با مداد پاکن محکم بستم و رویش را لاک زدم کپسول را مدتی توی آب گذاشتم تا مطمئن شوم که منفذی ندارد و محتویاتش به بیرون درد نخواهد کرد نلاشوبی ممتد احساس زعف درونیم را دوچندان کرده بود حسی داشتم که هیچ وقت سلامتم را باز نخواهم یافت باش خانه رفتم یک قاشق نمک را با آب قاطی کردم و سر کشیدم از بعد از ظهر هر جور دوا و درمانی را که به فکرم رسیده بود به کار گرفته بودم هنوز آب از حلقم پایین نرفته دلم به هم پیچی صدای علی را شنیدم که به نیما میگفت فردا سر قرار رفقا بز شیرین و بگو. شاید رفیق دکتوری رو به تیم ما بفرستند. پیش آمده بود که رفقا بر اثر شلیک اتفاقی گلوله و یا انفجار نارنجک زخمی شده باشند. در اغلب رختادها دکترهای سازمان موفق می زخمیها را معالجه کنند. اما گاهی هم مجبور میشدند به درمانگاه یا دکترهای دیگر متوصل شوند مثل مورد رفیق سعید پایان یاد تعریف رفیق سیمین افتادم که میگفت زامن نارنجک رفیق سعید موقعی در آوردن پیرنش به دگمه پیرن گیر می‌کنه زامن کشیده نارنجک منفجر میشه شکم و زیر شکم رفیق سعید زخمی میشه زخم عمیق طوفان ریزی چنان شدید که از رفقای تیم کاری بر نمیاد فرصتی هم واسه خبر کردن دوک‌های سازمان نداشتند. صدای نیما مرا از خاطره رفیق سیمین بیرون آورد. بهتره تا فردا شب نکنیم و ببریمش در مونگاه مگه نمیبینی روپاش بند نیست؟ اما علی که مسئول تیم بود هنوز تردید داشت. از حرکت کردن در خیابانها در آن وقت شب نگران بودم. هر حرکت اضافی یعنی خطری برای همه. نگران بودم با پایین افتادن فشارم بیهوش شوم. علی دوباره گفت خطرناکه الان ساعت یک و نیمه اگه تورا گشتی جلوتونو بگیره چی میگین؟ حق داشت حتی نیما هم میدانست که حرکت در آن وقت شبی خطر نیست کافی بود به گشتی برخورد کنیم یا پاسبانی به ما مشکوک شود حتی نمیتوانستیم آدرس خانه را بدهیم نیما جواب داد میگم زنم مریضه. داریم میریم مریض خونه. این هم آدم شبا این طرف اون طرف میرن. رمغ شرکت در گفتگوی آن دورا را نداشتم. از ذهنم گذشت. هیه بیهوش بشم. چطوری میخوان من به یه جایی برسوند؟ احساسی دوگانه داشتم. علی در فکر بود. دوباره به دستشویی رفتم تا آب نمکی را که سرکشیده بودم برگردانم. درد در دل و رودم پیچید. مستحسل کنار دستشویی نشستم صدای علی را شنیدم که می گفت شیرین کمرتو باز کن فقط سیانور با خودت بردار خواستم مخالفت کنم اما نیما موتور را برای رفتن آماده کرده بود همین نزدیکی ها است. درمونگاه هست 24 ساعت شبانه روز اسلحه به کمرم بود جزی از من شده بود تنها وقت ورزش یا دیدار با همسایه ها بازش می کردم. از حرکت بدون سلاح می ترسیدم. بدون آن حس می کردم که لخت هستم. اگر اتفاقی می تنها راه مرگ با سیانور بود و از این نوع مرگ بیزار بودم. قررش موتور نیما سکوت شب را شکست. هوا گرم بود اما باد شبانه که به تنم خورد شروع به لرزیدن کردم. خود را در چادر پیچیده سعی کردم پشت شانه‌های نیما تا آنجا که ممکن است کوچک شوم شیرین منو بگیر میافتی خیابان آنقدرها قدرها که فکر می‌کردم خلوت نبود مردی پیاده می‌رفت موتوری در حرکت بود تاکسی پشت چراغ قرمز در انتظار سبز شدن چراغ ایستاده بود کامیونی در حار خالی کردن بار دلگرم شدم که تنها نیستیم درمانگاه مانگاه مانی یک ای بود که درش از توی حیاتی باز میشد. نیما موتور را جلوی در نگه داشت. کسی پشت میز اتاق جلویی چرت میزد. نیما دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت های حال زنم بعد کجا ببرمش دکتر هست؟ در درمانگاه به راهروی باریک با دیوارهای آبی رنگ باز میشد. چراغ محتابی کمسوی فضا را روشن می کرد. زنی بچه بغل پاها را روی صندلی دراز کرده بود مردی هم سمت دیگر بر صندلی فلزی کنار دیوار نشسته بود با وارد شدن ما هر دو سر از دیوار برداشتند و نگاهمان کردند. بر اولین صندلی نشستم سرمای صندلی به جانم افتاد نیما مرا گذاشت و به سمت اتاقی رفت که چراغش روشن بود بچه در بغل زن قل زد و نالهی کرد پرسیدم خدا بد نده، چشه؟ احسال داره؟ بوی الکل در فضا حالم را به همزد پرسیدم دستشویی کجاست؟ هر لحظه که فکر می کردم حالم بهتر شده است التهاب معده خبر می داد که هنوز بیمارم از دستشویی که بیرون آمدم نیما را دم در منتظر ایستاده یافتم کجا رفتی؟ نگران شدم و مرا به سمت اتاقی که چراغش روشن بود برد و تخت در اون اتاق بود که پرده ی آنها را از هم جدا می کرد زنی حامله بر یکی خوابیده بود پرستار اشاره کرد تا بر تخت دیگر دراز بکشم نیما مهلت نداد و وضع مرا تشریح کرد حتی بهتر از خودم پرستار گوشی گذاشت و نبزم را گرفت کجا درد میکنه حامله که نیستی نبزت خیلی ضعیفه باید سرم وصل کنیم سوزنی آورد و در بازویم فرو کرد پایین افتادن فشار پیدا کردن رگ دستم را مشکل کرده بود سوزن را برای یافتن رگ زیر پوست چرخاند فایده ای نداشت چشمانم سیاهی رفت حرقی سرد بر پیشانیم نشست داخ شدم و قلبم به تپش افتاد پرستار دست راست را رها کرد و دست چپ را گرفت اما رگی پیدا نمی احساس خفگی داشتم آمدم بگویم حالم بد است از حال رفتم مادر و برادرم در راه روی خانه بازی می کنند جلو می روم. مامان مرا بر زانویش می نشاند و با دست موهایم را نوازش می کند. با بوگ بدی به خود آمدم کسی به صورتم می زد. چرا اینطوری شدی دختر جون؟ از بوی بد دلم دوباره پیچ زد بلند شدم و نشستم پرستار لگنی دستم داد و به سرعت از اتاق خارج شد دهانم بدمزه بود نیما نزدیک آمد گفت رفت دکتر رو صدا کنه باز چشمم سیاهی رفت آرام گفتم نیما سرش را جلو آورد بریده و با بغز گفتم هی اتفاقی افتاد اگه بیهوش شدم منو همینطوری ول نکن چیزی نگفت فشار انگشتانش را روی بازویم حس کردم. رفیق سیمین صحنه مرگ سعید پایان را اینطور ادامه داده بود. رفقا مجبور میشن سعیدو به مطب دکتری برسونن. وقتی پزشک شکم پاره شده سعیدو دید، فوری متوجه غیرعادی بودن اوضاع شد و از درمان رفیق سر بازدن. بعدم داد و فریاد را انداخته بود که این مریض تیر خورده. رفقا تهدیدش کردند. اما فایده ای نداشت اون میدونستش که چریکها تو هیچ شرایطی به اون صدمه ای نمیزنن سعید بیهوش روی تخت افتاده بود دکتر مطب گذاشته بود رو سرش رفقا باید تصمیم میگرفتن سعید و به مطب دیگه ای ببرن یا همونجا جا اون رو با وضعی که داشت ول کنن کجا میتونستم ببرنش بیدفاهم نمیشد ولش کرد تا زنده دست پلیس بیفته و زیر شکنجه. مجبور شدند با شلیک تیری به سعید مانه بشن که اون زنده به دست پلیس بیفته. بارها فکر کرده بودم که اگر جای رفقا بودم چه می آیا چارهای جز شلیک داشتم؟ اگر میدانستم رها کردن او یعنی افتادنش به چنگال ساواک و شکنجه های وحشتناک و بعد هم اعدام؟ آیا در شلیک لحظه شک می کردم؟ شنیدم پس از آن واقعه رفقا تا مدتی دوچار افسردگی شده بودند می توانستم تصور کنم که این تصمیم ناگزیر تا چه حد دشوار بوده است از حمید اشرف نقل میشد که گفته است این مشکل ترین تصمیمی است که رفیقی می تواند درباره رفیق زخمیش بگیرد با خود فکر کردم چه می کرد نیما اگر حالم بدتر می شد. چون این تصمیمی نیما رو خرد و نابود می کرد چون این مرگی را هرگز تصور نمیکردم. دلم به حال خودم سوخت اشک از گوشه چشمم سرازیر شد نیما گفت نگفتم رفت دکتر رو صدا کنه صدای که نزدیک می دلم را گرم کرد هر دو دستش رو امتحان کردی؟ پرستار دو دست مرا به دکتر نشان داد دکتر سوزنی گرفت آن را امیختر زیر پوستم چرخاند دیگر دستم نبود که درد میکرد. درد در عمق وجودم نره میکشید. دندان در لب فرو برده و دست را چنان محکم مشت کرده بودم که ناخن در گوشتم فرو میرفت. دکتر سوزن را از بازو درآورد و با یک حرکت سری در رگ پشت دستم فرو برد. با فرو رفتر سوزن مایه گرمی زیر پوستم لقصید. نیما با حیجان گفت سرون شد. آرامشی رخوتناک در وجودم خزید انگار همه به یک بار از اتاق خارج شدند نیما دستش را بر پیشانیم کشید من چیزی گفت که نشنیدم وقتی بیدار شدم ساعت روبرو ده دقیقه به شش را نشان میداد جلوی تخت ای کشیده بودند بیرون را نمیدیدم هنوز احساس ضعف میکردم اما از دلاشوبی و درد معده خبری نبود شیشه سرم را دیدم که به آخر رسیده است نیما کنار تخت روی صندلی نشسته بود سرش را به دیوار تکه داده و چشمانش را بسته بود فرصت کردم تا خوب به چهرش نگاه کنم صورتش آرام بود دیشب خود را با خیال راحت به دستش داده بودم مطمئن بودم که هر کاری از دستش براید انجام خواهم داد. این پسر چه جایی تو وجودم داره؟ انگار به کشف تازه ای رسیده باشم، تنم داغ و قلبم چنان به تپش افتاد که صدایش را میشنیدم پیش بیش از اونی که فکر می به درونم نفوذ کرده. این چه حسیه؟ ساعتی پیش دست نیما بر پیشانیم می گفت من با تو هم نگران نباش از این فکر چونان بیتاب شدم که نتوانستم بی حرکت بر تخت بمانم با اولین تکانی که خوردم نیما چشمانش باز شد چی شده؟ سعی کردم به او نگاه نکنم می ترسیدم از نگاهم به فکرهایم پی ببرد سرم تموم شده پرستار رو صدا کنی از دستم در بیاره. چیه حالت خوش نیست نمی توانستم چیزی را از او پنهان کنم باید حرف را عوض می کردم نه خوبم پرستار دیشب چی می میگفت حضرت اینجا چی خواسته هوا کاملا روشن شده بود که با کیسه دارو راهی خانه شدیم مونیر خانوم تا ما را دید جلو آمد و حالم را پرسید قبل از اینکه جوابی بدهم گفت ان شاء دیگه وقتش بودا مواظب خودت باش زیاد بلند کوتاه نشی نیما از ما فاصله گرفت همسایه سرش را جلو آورد نزدیک گوشم طوری که نیما نشنود گفت حالا وقتش است خودتو برای شووره لوس کنی علی تمام شب را بیدار مانده بود حالا باید یکی از آن دو نگهبانی میدادند و دیگری میخوابید و بعد دوباره عوض میکردند بدن ناتوانم را به خواب سپردم یک بار که بیدار شدم هنوز هوا روشن بود علی خواب بود و نیما گهبانی میداد. داد مهدم مالش میرفت. رفت احساس گرسنگی داشتم اما در من توان بلند شدن نبود کاش کسی لیوانی چای یا بشقابی قضا می آورد حرف های روز پیش در ذهنم دور می زد نمی توانستم قبول کنم که رفیق بهمن را کشته باشد کشتن یک رفیق به جرم روابط عاشقانه یا هر دلیل دیگری با هیچ منطقی قابل قبول نبود کشتن یک پلیس در درگیری یا در دفاع از خود یا به هنگام فرار را میتوانستم تجسم کنم کشتن رفقای زخمی را هم میتوانستم توجیه کنم کرچه نمیدانم اگر در چنین موقعیتی گیر میکردم چه واکنشی نشان میدادم اما کشتن رفیقی با قصد و طرح قبلی برایم غیر قابل تصور بود نیما می گفت چرا باید به کشتن کسی حتی دشمن عادت کنیم با یادآوری نام نیما قلبم دوباره به تفش افتاد وقتی به سازمان آمدم دیوار آهنینی به دور خود کشیدم دیواری که نه قلب من بتواند از آن خارج شود و نه دل دیگری به از آن عبور کند اکنون نمیدانم چه بلایی سر این دیوار آمده بود حسی که به نیما پیدا کرده بودم می بر ارادم پیروز شود اگر کسی با آن پی بورد ترس وجودم را فرا گرفت <تصفيق> اشته هاو گذشته مرام به جاست گذشت از جان باید بگذشت از توفنها به شبها دارم بایارم پیمان که بر فروزم آتشها در کوهستانها شب سیاه ز فرقان زدی راه گذار کنن نجات کن گلی من سر برای من می آخرین با تراو خدا نگافتام می روم به سوی استرن و بهار ما گذشته گذشته ها گذشته But I'm the just that you sorry Don در پیش تو می دختر زیبا از بردن تو، روشن مرا به. پرای آخرین با تراو خدان جاغدا می‌روم به سوی سارنور سحر ما daß der Haube zer